دوستان، هیچ چیزی بهتر از محبت کسی رو جذب عیسی مسیح نمی کنه. به کلاس دیگه ای از دانشکده کچک کتاب مقدس خوش اومدیم. محبت بیشترین تعیید ایمان ما در برابر ایمانداران دیگه هست و نیز تعییدی برای خود ما هم هست. اگر اولین باری که در کلاس ما شرکت می کنین و از نجاتتون شک داشتید و یا الان شک دارین، با ما بمونین. معلم ما امروز مطالعه نامه یوحنا رو تموم میکنه. حالا این معلم ما و این شما با هم به درس امروزمون تحت عنوان اقراری که تایید میکنه گوش میکنیم. ما در جلسات گذشته گفتیم که رساله اول یوحنا یک قطب نمای ایمان، ما یک قطب نمای هشت جهتی اطمینان رو در این رساله بسیار کاربردی یوحنا پیدا کردیم. بخشی از موضوع اطمینان چیزی هست که یوحنا به اون آزمودن روحا میگه که ببینیم آیا از خدا هست یا نه این موضوعی که یوحنا به محض شروع باب 4 رساله اطمینانش به اون اشاره میکنه او می نویسه ای عزیزان به هر نبوتی یا الهامی اعتماد نکنید بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خدا هست یا نه زیرا ایده زیادی هستند که به سرتاسر سر دنیا رفته به دروغ نبوت میکنند چگونه میتوان نبوتی را که از طرف روح خدا هست تشخیص داد هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خدا است و هر که منکر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست بلکه او دارای روح دشمن مسیح می باشد شما شنیده اید که او میآید در حالی که هم اکنون در این جهان است در ادامه بررسی رساله اول یوحنا ما بر مبنای اطمینان نگاهی میندازیم چگونه میتونیم بفهمیم که نجات یافته ایم چگونه میتونیم بفهمیم که حیات ابدی داریم در سراسر این رساله کوچک اطمینان یوحنا به ما میگه چطور میتونیم بفهمیم که نجات و حیات ابدی داریم در آیات ابتدایی باب چهار، یوحنا به ما میگه که چطور روحا رو آزمایش کنیم یوحنا به ما نصیحت میکنه که روحها رو آزمایش کنیم. هر چیزی که روحانی هست، روح القدس نیست. گفته شده که بین زمین و آسمان آنقدر چیزهای زیادی هست که انسان نمیتونه تصورش رو هم بکنه. این مخصوصاً در عالم روح صدق میکنه. در عالم روح، روحهای خوب و روحهای بد وجود دارن. یوحنای رسول به ما نصیحت کرده که روحها رو آزمایش کنیم تا فرقشان را تشخیص دهیم. اینجا باز هم به مبانی نظری یا الهیاتی دوستی بین ایمانداران می‌پردازیم، چون که اقرار آزمون نظری هست که به وسیله اون هر روحی را رو آزمایش می کنیم. هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خدا هست. چطور یک روح چیزی رو در جسم اقرار میکنه؟ چیزی که یوحنا میگه اینه که هر مرد و زنی که در روح و در جسم اقرار کند که عیسی مسیح در جسم آمد از خدا هست پولس رسول در نامه دومش به قرنتیان به ما گفته که اشخاص غیرروحانی و سکولار می توانند انجیل رو در جسم فانی ما ببینند. این همون چیزیه که یوحنا ازش حرف میزنه وقتی از اقرار روح در جسم صحبت میکنه. برای درک این مفهوم لازمه که به انجیل یوحنا برگردیم. یادتون هست که در باب هفته هم انجیل یوحنا عیسی به عنوان کاهن اعظم برای رسولان و کلیسا دعای باشکوهی کرد. وقتی خداوند ما نیسای مسیح برای رسولان دعا میکرد، این دعا رو کرد که اونها طوری زندگی کنند تا دنیا بدون خدا او رو فرستاده، پسر خدا رو، و بدونن خدایی که پسرش رو به این دنیا فرستاده، اونا رو درست به اندازه پسر خودش دوست داره. ایسا دعا میکرد رسولان به گونه ای زندگی کنند که دنیا باور کنه خدا یگان پسرش رو به این جهان فرستاده و باور کنند که همون خدا مردم دنیا رو به اندازه پسر خودش دوست داره و اونا چطور میتونستند طوری زندگی کنند که دنیا اینو بدونه موضوعی که یوحنا در نوشته‌هاش بر اون تاکید میکنه اینه وقتی اونا همدیگر رو محبت کنند به این ترتیب به دنیا نشون خواهند داد که خدا اونها رو دوست داره و اینکه خدا اونها رو اونقدر دوست داشت که یگان پسرش رو به دنیا فرستاد تا اونها نجات پیدا کنن یادتون هست که عیسی در بالاخانه قبل از اینکه شاگردان رو ترک کنه به اونها گفت شما حاملان پیام محبت هستید که اون رو به دنیا اعلام کنید و اینگونه میتونید اون پیام رو به دنیا اعلام کنید که شروع کنید به محبت به همدیگه و وقتی مردم شما رو ببینند که همدیگر رو به همون نه محبت میکنید که من شما را محبت کردم اونها پیام محبت رو دریافت خواهند کرد این عملا در نسل‌های اول کلیسا اتفاق افتاد بارها در کتاب مقدس میخونیم که میگه اینک آنها همدیگر رو محبت میکردند. این چیزی بود که بارها و بارها در تاریخ کلیساهای قرد نخست شنیده میشد. من نمیدونم امروزه چند وقت یه بار میشه اینو شنید. وقتی مردم به ما نگاه میکنن، وقتی که ما رو در کلیساهامون ملاحظه میکنن، ما یا اونا وقتی به ما نگاه میکنن میگن ببین اونها چقدر همدیگر رو دوست دارن. این چیزیه که باید در مورد ما گفته بشه چون یوحنا میگه ما به این ترتیب اقرار می کنیم که روح مسیح در جسم فانی ما هست و به این ترتیب میتونیم اینو به کل جهان اعلام کنیم. کتاب مقدس میگه زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. وقتی ما هم دیگر را همون محبت می که عیسی مسیح شاگردانش را محبت می کرد حقیقت اون آیه را به تمام دنیا انتقال میدیم. به عنوان مقدمه باب چهار به ما گفته شده که روحهای ما باید اقرار کنند که محبت مسیح در جسم ما هست. بعد یوحنا به ما ده دلیل ارائه میکنه که چرا باید همدیگر رو محبت کنیم. یوحنا به ما میگه مطلقا ضروری هست که در جسم و در روحمان روح مسیح را اقرار کنیم که همان روح محبت هست. یوحنا بعد به ما میگه که روح محبت مسیح در جسم فانی ما جهت دیگری در قطب نمای اطمینان ما هست. اینجا در اول یوحنا باب چهار ضمن این که این رسول محبت ده دلیل به ما ارائه میکنه که چرا ما باید همدیگر رو محبت کنیم، باب زیبایی محبت در کتاب مقدس رو هم به ما میده. قبل از هر چیز در آیه هفت یوحنا به ما میگه باید همدیگر رو محبت کنیم چون محبت از خداست. محبت حقیقی محبت آگاپه از خدا هست خدا سرچشمه محبت حقیقی هست، پس یوحنا به ما میگه شما ایمانداران باید محبت کنید. شما تنها کسانی هستید که میتونید به روش درست محبت کنید، چون محبت حقیقی از خداست. بعد یوحنا وقتی به ما میگه باید همدیگر رو محبت کنید، به مسئله اطمینان برمیگرده و میگه چون هر که اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا، ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند در خدا ساکن است و خدا در او اگه شما برید بیرون و سعی کنید تمام شاگردان ایسای مسیح رو در دنیا شناسایی کنید از کجا میدونید چه کسی شاگرد مسیح است بنا به گفته یوحنا شما میتونید این طور بشناسید تمام کسانی که با محبت آگاپه محبت می کنند با محبت واقعی محبتی که پولس رسول در اول قرنتیان سیزده شرح میده باید اون شخص رو انتخاب کنید چون اون نوع محبت فقط میتونه از خدا باشه بنابراین کسانی که اونطور محبت میکنن واقعا از خدا تولد یافتن اونا خدا رو میشناسند و کسانی که اونطور محبت نمیکنن از خدا نیستن این آزمایش روها رو بسیار آسون میکنه دلیل سوم یوحنا که چرا باید ما محبت کنیم در آیه 8 باب چهار اومده؟ ما باید محبت کنیم چون خدا محبته محبت جوهر وجود خدا هست. در این متن ما این سخنان عظیم کتاب مقدس رو میبینیم. خدا محبت است. محبت جوهر وجود خدا است. اگر بگید که از خدا متولد شده اید یا در پسر خدا عیسی مسیح هستید پس باید محبت اعتبارنامه شما باشه. بر اساس کتاب مقدس همواره اعتبار روحانیت محبت است. کتاب مقدس مرتباً این رو تعلیم میده. ما دوست داریم محبت رو جایگزین عطایای روحانی کنیم. امروزه مظاهر روحانی خاصی هستند که بسیاری از مردم بر مبنای اونها میگن که شما روحانی هستید. اما کتاب مقدس میگه نه. دلیلی که ثابت میکنه شما روحانی هستید، محبته. ثمره یا دلیل روح محبت هست. خدا محبته و اگر شما ادعا میکنید که از خدا مولود شدید، باید تولد از خدا رو با نشان دادن روح محبت مسیح در جسم فانی خودتون ثابت کنید. در آیات ده و یازده یوحنا میگه ما باید محبت کنیم چون سرمشق عظیمی از محبت داریم. یوحنا به مرگ عیسی مسیح بر صلیب بشاره میکنه و بعد میگه محبتی که من از آن سخن میگویم محبت ما نسبت به خدا نیست بلکه محبت خدا نسبت به ماست. محبتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد. ای عزیزان اگر محبت خدا به ما چنین است ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم پس شما وقتی با محبت آگاپه محبت می‌کنید نشون میدید که انجیل رو پذیرفتید و در آیه 16 یوحنا کلامی به ما میده که برای من بار معنایی زیادی داره در اون آیه او میگه خدا محبت است و هر که با محبت زندگی میکند در خدا ساکن است و خدا در او در ابرانیان یازده گفته شده که ما نمیتونیم به حضور خدا بیاییم مگر اینکه باور کنیم او هست. وقتی من تحقیق می‌کردم که خدا رو بشناسم، در واقعیت و در رابطه متوجه شدم که به حضور خدا اومدم و می‌گفتم من باور دارم که تو هستی. اما تو چی هستی؟ چطور میتونم تو رو بشناسم اگه ندونم تو چی هستی؟ اگه باور دارید که او هست، آیا تا حالا این رو پرسیدید که او چی هست؟ این یکی از جواب هاست. در باب یک اول یوحنا او گفته که خدا نور هست. بنابراین اگر شما بخواید با خدا دوستی داشته باشید، باید وارد نور بشید و در نور گام بردارید چون که او نور هست. اما اینجا در باب چهار یوحنا میگه که خدا محبته. خدا محبت هست و هر که با محبت زندگی میکند در خدا ساکن است و خدا در او. من اینو شخصا تجربه کردم. روزی ساعت سه صبح برای کار اجتماعی بیرون رفتم. میدونستم با ایده زیادی کار خواهم کرد که نمی کار زیادی برای من بکنن مخصوصا بچه‌هایی که مشکلات فراوانی داشتن یادم اون روز صبح این دعا رو کردم خدایا تو میگی محبت آگاپه هستی و من میدونم که تو احتمالا کسانی رو که نیاز دارن با این نوع محبت محبت می‌کنی چون اونها انسان‌های دردمندی هستن من می‌خوام جایی برم که این انسان‌های دردمند هستن و رابطی باشم بین اون نوع محبتی که تو هستی و دردی که اون انسان‌ها احساس می‌کنند وقتی این کارو بکنم این محبتی رو که تو هستی از طریق من به درد اون انسانهای دردمند انتقال بده میدونی چی شد او این کار رو کرد و وقتی این کار رو کرد برای اولین بار در زندگی احساس کردم که به شناخت خدا در رابطه نائل شدم طوری که به لحاظی من او رو لمس کردم و او من را لمس کرد شعری در این زمینه به این مضمون هست که میگه من به دنبال جانم میگشتم ولی نمیتونستم ببینم خدایم رو جستجو میکردم اما او از من دوری می کرد. به دیدن همسایه رفتم و هر سه رو یافتم. من می تونستم با حیجان بگم من خدا رو در گوشه یک خیابان خلوت در ساعت سه صبح پیدا کردم. من خدا رو در سحن معبد و یا در یک سمینار پیدا نکردم. بلکه او رو در جایی پیدا کردم که سرشار از درد بود. دردهای بسیار و نیازهای بسیار. من این رو شدیدن برای شما توصیه می کنم. اگه میخواید خدا رو پیدا کنید با قلب او و با محبت او که در شما ساکنه به دیدن دردمندان و نیازمندان برید وقتی ما به خدا فکر می کنیم معمولا طوری به او فکر می کنیم که او همیشه در آسمان ها هست سعی کنید از دیدگاهی افقی به خدا فکر کنید به خدا طوری فکر کنید که در اطراف شماست به عنوان خدای مهربانی که میخواد به همه انسانهای دردمند اطراف شما توسط شما محبت کنه، به مردمی که زندگیشون به زندگی شما متکی هست محبت کنید. کسانی که دردمندن، کسانی که نیاز دارند با محبت خدا محبت بشن، سعی کنید اینو به خدا بگید. خدایا امروز میخوام به جایی برم که انسانهای دردمند هستن و میخوام خودمو جایی بین همه این محبتی که تو هستی و همه دردی که اونا احساس میکنن قرار بدم. وقتی این کارو میکنم محبتی رو که تو هستی توسط من انتقال بده و توسط من به قلب اونها خدمت کن. اگر این کار رو بکنید، من ایمان دارم که چیز حیجان انگیزی کشف خواهید کرد. وقتی من به این کشف نائل شدم، فهمیدم که کجا میتونم خدا رو پیدا کنم و فهمیدم که بقیه عمرم رو میخوام کجا باشم. یوحنا این رو این گونه بیان کرده. خدا محبت است و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید. که او پسر گانه خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیله او حیات داشته باشیم بنابراین اگر شما بتونید در این محبت که خدا هست ساکن بشید اگه بتونید وارد راه این محبت بشید و کسی با چنین محبتی باشید اون وقت میتونید اجازه بدید این محبت از شما سرازیر بشه اگر شما در این محبتی که خدا هست ساکن بشید در خدا ساکن خواهید شد و خدا در شما ساکن خواهد شد وقتی این اتفاق بیفته باور کنید شما جهت دیگری بر روی قطب نمای اطمینانتان خواهید یافت یوحنا در آیه 17 باب 4 میگه ما باید همدیگر را محبت کنیم چون اگه این کارو بکنیم میتونیم در روز داوری جسور باشیم من نمیدونم شما در مورد داوری چی فکر میکنید اما من توقع ندارم وقتی در مقابل تخت داوری مسیح میستم، احساس شهامت داشته باشم من ایمان دارم که تخت داوری مسیح برای ارزیابی ایمانداران برپا خواهد شد اون جاییه که من حق خودم رو نمیخوام من اونجا بلند نمیشم بگم که من حقم رو میخوام این آخرین جا در دنیا هست که بخوام چیزی رو که شایستهش هستم دریافت کنم چون میدونم حق من جهنمه در مقابل تخت داوری تنها چیزی که به اون فکر خواهم کرد رحمت و فیض و محبت و مهربانی خدا هست یه بار یه قاضی پیر بازنشسته میگفت که بسیاری از کسانی که در مقابل تخت او ایستادند به ادالت علاقه ای نداشتند. او میگفت چون اونها معمولاً مقصر بودند، بیشترشون به دنبال رحمت بودند تا ادالت. یوحنا اینجا نظریه جالبی به ما میده. او میگه اگر ما به کمال محبت کنیم، اون وقت میتونیم با جسارت در روز داوری حاضر بشیم چون همونطور که کتاب مقدس به ما میگه، نهایت شریعت محبته. اگر به همسایتون محبت کنید، هیچ کدوم از فرامینی رو که مربوط به همسایتون هست، نقض نخواهید کرد. محبت اجرای شریعت هست. پس اگر محبت کامل داشته باشید، اون وقت میتونید در روز داوری جسارت داشته باشید. یوحنا در آیه 17 میگه ما باید محبت کنیم زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این جهان هست. اینها سخنان بسیار عمیقی هستند. حالا بهشون فکر کنید. زندگی ما مانند زندگی او در این جهان هست ما در این جهان جوهر مسیح هستیم اگر مسیح در ما هست و محبت آگاپه خودش رو توسط ما نشون میده و از طریق ما ابراز میکنه پس اون موقع این حقیقت داره که زندگی ما مانند زندگی او در این جهان هست به این دلیل که پولس در دوم قرنتیان باب سه آیات دو تا سه میگه بهترین نامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردمان را بخوانند و بفهمند شما نامه سرگشادهی هستید که مسیحان را نوشته و توسط ما به دیگران نسانیده است. این نامه با مرکب و بر روی تخت سنگ نوشته نشده بلکه نامه ای هست که روح خدای زنده بر قلبهای انسانی نوشته. یه نفر می ما با حرفهایی که میزنیم و کارهایی که می در حال نوشتن انجیل هستیم و هر روز یک باب می نویسیم مردم چیزی رو که ما می نویسیم می خونن خواه بی ایمانی باشه و یا حقیقت و می تونن بگن که انجیل از نظر شما چی هست پس انجیل از نظر شما چیه وقتی مردم زندگی شما رو بخونن نوع انجیلی هستی؟ چالش اینه که اگه ما این محبت آگاپر رو داشته باشیم که از طریق ما جاری بشه پس با فیض خدا میتونیم بگیم زندگی ما مانند زندگی او در این جهان هست. آیا دیگران عیسی را در شما می آیا خانواده شما می بینند که محبت او از شما جاری میشه؟ یوحنا در آیه هجده باب چهار رساله اولش به ما میگه که ما باید همدیگر را محبت کنیم چون کسی که محبت دارد نمی و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است زیرا محبت کامل ترس را دور میسازد ولی شخصی که می در انتظار مجازات است. یکی از مشکلات بزرگی که ما امروزه داریم ترس هست ترس هایی هستند که جانفرسا فرسا هستند اگر شما در یه جنگل باشید و ببری آماده بشه که به شما حمله کنه و شما بترسید این ترس طبیعی خواهد بود حتی میشه گفت ترس سالمی هست اگر اون موقع نترسید حتما مشکلی در حواس شما هست اما وقتی ببری روی درخت نیست و هیچ مبنایی برای ترس شما نیست، و شما می ترسید میتونیم بگیم این ترس جانفرسا هست همونطور که بعضی ها همیشه افسرده اند هم دائما ترس دارن کلمه جانفرسا به چنین ترس نسبت داده میشه که هیچ مبنایی برای اونها وجود نداره این فرمول یوحنا برای ترس هست محبت کامل ترس را دور می سازد منظور یوحنا از این چیه؟ همونطور که یوحنا گفت اگر محبت ما کامل باشه میتونیم در روز داوری شهامت داشته باشیم این رو هم گفته که اگه ما کامل محبت کنیم ترس رو دور می‌کنیم مفهوم ترس چیه از چی میترسید شاید میترسید اتفاقی براتون بیفته یا شاید میترسید چیزی رو از دست بدید مثل سلامتیتون یا سلامتی یکی از عزیزانتون میترسید چه اتفاقی برام خواهد افتاد این سوال ماهیت بسیاری از ترس های ما رو توصیف می‌کنه وقتی محبت رو درک بکنید مخصوصا اون دو فرمانی رو که یوحنا بر روش تأکید کرده خدا رو محبت کن و برادرت رو محبت کن خواهید فهمید که چطور محبت کامل ترس رو زایل میکنه. یادتون باشه که کی محبت هست یوحنا قبلا به ما گفته که خدا محبته او تنها کسیه که محبت کامله اگر ما خدا داریم از چه چیزی باید بترسیم اگر ترس دارید یوحنا میگه که شما واقعا خدا رو نمیشناسید و واقعا خدا رو دوست ندارید شاید وقتی یوحنا گفت محبت کامل ترس را دور میسازد منظورش دقیقا همین بوده بعد یوحنا در آیه 20 باب چهار به ما میگه ما باید همدیگر را محبت کنیم چون محبت عمودی برای خدا و محبت و افقی برای برادران قابل تفکیک نیستن شما نمیتونید بگید من خدا رو دوست دارم اما برادرتون رو محبت نکنید چون در این صورت شما دروغگو هستید این دو بعد از محبت غیر قابل تفکیک هستند اونها صلیبی رو تشکیل میدن که پایه عمودی اون محبت به خداست و شاخه افقی اون محبت به برادر ده دلیل یوحنا که چرا باید همدیگر رو محبت کنیم به شکل فرمانی به ما داده شده فرمانی که او به ما داده است چنین است هر که خدا را دوست دارد باید برادر خود را نیز دوست بدارد طبیعتا ما دوست نداریم فرمان امریه یا حکمی دریافت کنیم ما میل داریم که آزاد باشیم از این رو کاملا تاثیر کلمه فرمان رو درک نمی‌کنیم اگر ما تحت اختیار نوع دیگری از حکومت بودیم مثلا امپراتوری یا رژیم‌های شاهنشاهی شاید درک بهتری از این کلمه داشتیم از یک لحاظ دلیل دهمی که یوحنا برای محبت ما نسبت به همدیگه دیگه ارائه کرده میتونست به تنهایی کافی باشه چون میگه عیسی فرمان داده که ما یکدیگر رو محبت کنیم برادر کوچه که من به ارتش ملحق شد. او نوجوانی سرکش و اصلاح‌ناپذیر بود. اما وقتی او در اردو یا آموزشی مقدماتی بود، ارتش از او یک جنتلمن و یک شاگرد ممتاز ساخت. من از کاری که ارتش با برادرم کرده بود، کاملا تحت تأثیر قرار گرفته بودم. وقتی از او پرسیدم چطور این اتفاق افتاد، او داستان‌های کوتاهی برای من تعریف کرد. مثلا می‌گفت یک بار سرگروهبان او را وادار کرده بود که وارد دپوی اشغال‌ها بشه. و به مدت نیم ساعت اونجا فریاد بزنه یه نفر بیاد منو از اینجا بیاره بیرون. بعد میگفت یک بار در ساعتی که کشیدن سیگار ممنوع بوده او سیگار میکشیده. بعد سرگروهبان به او گفته بود باید یک مراسم خاک سپاری کوچک برای اون تهسیگار برگزار کنیم. و او رو وادار کرده بود حفره ای به ابعاد یک گور واقعی بکنه تا اون تهسیگار رو دفن میکنن. کندن اون حفره تمام روز برادرم رو گرفته بود و بالاخره وقتی، تحسیگار رو دفن کرده بود و تمام وجودش پر از گرد و خاک و عرق بوده برگشته و سرگروهبان در حالی که حاضر می می‌شده به خونش برگرده به او گفته بود راستی وقتی تحسیگار رو دفن کردی اون رو به سمت شمال و جنوب دفن کردی یا غرب و شرق خب طبیعتا برادرم نمیدونسته و سرگروهبان گفته بود متاسفم ما همیشه ها رو در جهت شمال و جنوب دفن میکنیم. پس تو مجبوری دوباره اون رو بکنی و مطمئن بشی که به سمت شمال و جنوب دفع شده باشه دفعه بعد که به برادرم گفته بودن سیگار نکشه فکر میکنید آیا او سیگار کشید؟ سیگار کشیدن ممنوع یک فرمان بود نه یک پیشنهاد نه یک گزینه این ماهیت یک فرمانه ما در فرهنگ امروزی خودمون تأثیر کلماتی مثل فرمان یا امر رو از دست دادی اما عیسی گفت که او خداوند و سرور هست وقتی عیسی فرمانی داده، فرمان او اجتنابناپذیر هست. فرمانهای او جای بحث و مذاکره نداشتند و ندارند. فرمانهای عیسی باید اطاعت بشن. یوحنا به ما میگه که دلیل دهم ده برای این که باید همدیگر را محبت کنیم، اینه که عیسی به ما فرمان داده همدیگر را محبت کنیم. وقتی باب پنج رو میخونید، خواهید دید که یوحنا راههای بیشتری رو با ما در میون میذاره تا بتونیم از نجاتمون مطمئن بشیم. مثلا میگه که ایمان کلید اطمینان ماست ما با ایمانمان بر دنیا غلبه میکنیم و اگه شما این ایمان غالب رو داشته باشید اون جهت دیگری بر روی قطب نمای اطمینان شما خواهد بود اگه شما آتیه ایمان داشته باشید اون مثل وراثت خدا درون شما هست و همیشه بر دنیای بیرون شما غلبه خواهد کرد مهم نیست که شرایط چگونه هستند مهم نیست که چه موانعی وجود دارند وراست خدا درون شما که عطیه ایمان او هست، همیشه بر دنیای بیرون شما غلبه خواهد کرد وقتی شما فهمیدید که این ایمان غالب بر دنیا رو دارید یقینا جهت دیگری رو روی قوت نمای اطمینانتان خواهید داشت همینطور در باب پنج یوحنا به ما میگه که سه شاهد در تجربیات ما هست که به ما اطمینان میده شهادت روح القدس است شهادت آب و شهادت خون به نظر میرسه که یوحنا به ما میگه که خدا پیشاپیش پیش شهادت روح رو به ما داده و ثمرات روح القدس رو در زندگیمون به بار آورده. اما بعد وقتی یوحنا درباره آب صحبت میکنه، او احتمالاً به تعمید آب اشاره میکنه. اساساً تعمید صرف نظر از اینکه شما به چه شکل تعمیدی اعتقاد دارید، اینه که امکان نداره کسی شاگرد مخفی عیسی مسیح باشه. تعمید این رو غیر ممکن میکنه. اگر شما ایمان کافی دارید که اعلام کنید من مسیحیم، من پیرو ایسای مسیحم؟ مخصوصا در فرهنگ های متخاسم، جایی که شاید به خاطر ایمانتون مورد آزار قرار بگیرید، تعمید شما یقینا جهت دیگری در قطب نمای اطمینانتان خواهد بود. در باب پنج اول یوحنا، او رسالش رو با گفتن این به پایان میبره. ما میدانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی. یوحنا شاید به انجیل خودش اشاره میکنه. در شانزده آیه نخست این رساله. یوحنا به ما گفت که چه چیزی میخواد به ما بگه. در باب دو و سه و چهار او چیزی رو که میخواست به ما گفت و در باب پنج یوحنا به ما میگه که چی گفته. در این آیات در باب پنج یوحنا خلاصه ای از آنچه در سراسر باب های رساله اول یوحنا گفته به ما ارائه میکنه حالا خیلی سریع میخوام رسالات دوم و سوم یوحنا رو با هم بررسی کنیم این رسالات بسیار کوتاه ترین کتاب کتاب‌ها در عهد جدید یک توالی بین انجیل یوحنا و رساله اول یوحنا و این دو رسالات کوتاه دوم و سوم یوحنا وجود داره در انجیل یوحنا او عیسی مسیح رو به ما معرفی میکرد و یادتون موضوع این بود عیسی کی هست ایمان چی هست حیات چی هست یوحنا وقتی انجیلش رو می نوشت اصلی او این بود یوحنا میخواست عیسی مسیح رو به ما معرفی کنه در اول یوحنا موضوع اطمینان بود از کجا میدونید واقعا ایمان به عیسی مسیح رو به کمال دارید و حیاتی رو که عیسی برای ما به ارمغان آورد دارید در رسالات دوم و سوم یوحنا در رسالات دوم و سوم یوحنا تأکید بر حقایقی هست که عیسی مسیح تعلیم داد. یوحنا در رساله دوم و سوم خودش مثل یک الهیدان به نظر میرسه چون او نگران حقایقی هست که عیسی تعلیم داده و علاقمند ایستادگی شما در تعهد به اون حقایق هست. یوحنا یازده بار در این دو رساله کوتاه که هر کدوم 13-14 آیه دارن. به حقیقت اشاره میکنه همونطور که در نوشته های پولوس دیدیم خیلی مهمتره که بتونیم بگیم من میدونم به کی ایمان دارم تا اینکه بگیم من میدونم به چی ایمان دارم امروز ما تاکید بی اندازه‌ای بر این داریم که بدونیم به چی باور داریم فرهنگ ما به ما میگه که دانش یک ارزش هست من معتقدم که این فلسفه به کلیسا هم راه پیدا کرده وقتی ما این سیستم های بسیار پیچیده الهیاتی رو ابدا کردیم که تاکیدش بر اینه که بدونیم به چی باور داریم هر کسی رو که با نظریات خاصی که ما باور داریم موافق نیست رد می کنیم. اگه اونا با هر نقطه موافق نباشن احساس می کنید باید اون شخص رو رد بکنید و با او دوستی هم نکنید این تاکید کتاب مقدس نیست تاکید انجیل یوحنا اینه که عیسی کیه معنی ایمان داشتن به عیسی چیه و این حیاتی که به خاطر شناخت عیسی چیه تاکید رساله اول یوحنا این بود که شما از کجا میتونید مطمئن بشید که توسط عیسی نجات یافتید اما در دوم و سوم یوحنا رسول محبت علاقمند به این هست که شما به چی ایمان دارید و اساسا منظورش چیزهایی بود که عیسی تعلیم داد بدعت یا تحریف تعالیم عیسی از همون ابتدای تاریخ کلیسا شروع شد چون در این رسالات کوتاه میشنویم که این رسول محبت میگه اگر مردم باور نکنند که عیسی همان مسیح است اگه اونا از این امتحان الهیاتی قبول نشند حتی اونها رو به نهار هم دعوت نکنید حتی به اونها خوشامد هم نگویید، کاری به اونا نداشته باشید یوحنا در مورد ارتداد و مرتدها بسیار سختگیر گیر هست وقتی یوحنا این نامه ها رو می نویسه او نامه دومش رو خطاب به بانوی برگزیده و فرزندان او می نویسه عملا اگه به اون نگاه کنید این تنها کتاب از کتاب مقدس هست که خطاب به یک زن نوشته شده. البته کتابهایی هستند که نام زنان بر اونها هست، اما این تنها کتابیه که خطاب به یک زن نوشته شده. پیداست که یوحنا رابطه شبانی با این بانوی برگزیده و مردی به نام گایوس و ایده دیگه داشته. از اینجا میتونید دیدگاهی از رابطه شبانی که یوحنا با این افراد داشته به دست بیارید. اما یوحنا افراد مشکلداری هم داشته، مثل کسی به نام دیوترفس که یوحنا در آیات نه و ده رساله سوم از او صحبت کرده. او میگه من نامه ای مختصر به کلیسا نوشتم، اما که همیشه دوست دارد خود را جلو بیاندازد، سخنان ما را قبول نمی کند. وقتی بیایم کلیسا را از تمام کارهایی که او کرده و تمام اتهامات بیاساس و نادرستی که به ما زده است مطلع خواهم ساخت. او به این کارها اکتفا نکرده، بلکه برادران را نیز به خانه خود راه نمی دهد و مانع می شود که دیگران نیز از آنها پذیرایی کنند. و اگر بعضی ها چنین کنند، او آنان را از کلیسا بیرون می کند. این به نظر من بسیار جالب بود که یوحنا این رسول عزیز پیر، مردی در کلیسای خودش داشته که احتمالاً باعث عذیت دائمی او بوده. گاهی شبانان امروزی یک رسولی دارند و شاید رهبرانی دارند که روزگار آنها را تیره و تار کردند. این برای من مایه تسلی هست که حتی یوحنا مردی رو در کلیساش داره که برنامه های او رو خراب میکنه و تسلیم اقتدار او نمیشه و باعث ازیت او میشه. از اونجایی که شبانان معاصر می دانند که داشتن رهبرانی مثل دیوترفس چه حسی داره این مایه تسلی هست که بدونیم حتی رسول محبت در همون قرن نخست در نسل اول کلیسا مجبور بوده با چنین افرادی برخورد کنه. در حالی که داریم به پایان این جلسه می رسیم می خواهم از شما سوال کنم آیا عیسی را به عنوان خداوند و منجی خود می شناسید می دونید او چه چیزی تعلیم میداد آیا از او پیروی می کنید اگر نه من از شما دعوت می کنم همین امروز او را به عنوان خداوند و منجی خود بپذیرید و از او پیروی کنید او محبت هست و شما را با محبتی ابدی و پایان ناپذیر دوست دارد به به چه حقیقت حیرت انگیزی خدا ما رو با محبتی ابدی دوست داره محبت او بلا شرط و به ما فرمان میده یکدیگر رو مثل اون محبت کنیم بدون محبت خدا ما نمیتونیم همدیگر رو محبت کنیم ما برای دوست داشتن مانند اون به کمک الهی نیازمندیم هر کسی که باور داره عیسی همون مسیح های از خدا متولد شده و همه اونهایی که از خدا متولد شدن، از فرامین اون اطاعت خواهند کرد. دانش روی عزیز، اگه به محبت ابدی خدا اعتماد کردید، امروز به حضور اون بیاید و فرزند اون بشید و بعد بذارید محبت خدا از طریق شما به اطرافیانتون که دردمندن و به محبت اون نیازمندن جاری بشه. باشه که خدا شما رو تو برنامه بعدی از امید آرامش و محبتش پر کنه